می خوانیم سوره تغابن را از کرده موضوع همین سوره ها خرج کردن است در این سوره هم علاوه از توحید و قیامت و احوال آخرت خدای از و بحث انفاق را در آخر آورده الله قردن حسنا که اگر خازن نمی کنی در رای خدا یک قرض الحسنه به خدا بده که چند برابر دریافت کنی پس اینجا هم ترغیب بچیه به انفاق هست. خلاصه سور اول مسئله توحید هست و دلایل عقلی برای اثبات توحید و همچنین تخویف دنیوی و اخروی بیان شده و آخر ترغیب به سوی انفاق بازم همون تسبیح و همون پاکی خدا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح می فقط برای الله حالا و قالا تمام ان مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير تصرفات را خدا ذکر می فرمات له الملك فقط و فقط پادشاهی مالی او هست مال کسی دیگه نیست این پادشاهان عارضی يك یک شب خدا اینها را سرنگون میکنه الملك فقط و فقط برای او هست حمد حمد برای او هست تعریف و ثنا برای او هست و هوا علی کل شیء قدیر و اون ذات بر هر چیزی قادر است هر کاری را او توانایی دارد حال دلیل عقلی دلیل عقلی بر اینکه واقعا خدا قادر است واقعا خدای تعالی تصرفات دارد هو الذی خلقکم خداوند همون ذاتی است که شما را آفرید تنها شما مسلمانان را نه همه بشریت را آفرید شما را که آفرید فمنكم کافر ومنكم مؤمن. بعضی از شما کافرند نسبت به ذات خدا منکرند یا نسبت به توحیدش منکرند و بعضی از شما مؤمنند، به خدا ایمان دارند والله بما تعملون بصیر خدا به اعمال شما بیناس اعمال ایمانیه و اعمال کفریه همه را خدا می بینت. خلق السماوات والأرض و بعد الله عز وجل می تنها شما را نیا فرید کائنات را آفرید تمام مخلوقات را آفرید آفرید آسمانها و زمین را بالحق بحق آفرید یعنی لإظهار الحق اینها را آفرید چند بار این آیه را شما خاندین انها را آفرید تا حق را نشان بده که من الحق من حق هستم وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ شما را که آفرید به شما صورت داد زیبا صورت داد قبلن این مطلب را عرض کردیم که انسان صورتش از همه موجودات و مخلوقات بهتره منظور از صورت این پوست نیست که یکی سیاه پوسته یکی سفود پوسته یکی زرد پوسته یکی سرخ پوسته نه این پوست مراد نیست همین شکلی که خدا به انسان داده حیاتی داده بقیه حیوانات را می بینید که سرشون سرف کند به زمین است و بلا نسبت پشتشون به آسمان است. اما انسان سر بلنده بقیه نمی توانند غذای خودشون را با دست بخورند. انسان با دست بیخور غذاش را پاک می کنه. کیفیت به غذاش میده. بقیه انسان، بقیه حیوانات هیچ از زیبایی‌ها را ندارد نه, نه زیبایی لباس لباسش از روزی پیدا میشه تا روزی می‌میره همون یک چیز است بعضی عورتشون هم ظاهره انسان نه انسان یعنی تمام زیبایی‌ها را دارد انسان سر بلنده انسان روی دو را میره انسان از کنم که اعضایش را خدا طوری آفریده که براحت راحت هر کاری را انجام میده لذا الله تعالی می فرماید و به شما صورت داد فا احسن صورکم صورت شما را زیبا آفرید زیبا قرار داد تفسیر بیزاوی انجا نوشته که خدا تعالی مننت میگزارد و اشاره میکند که من ظاهر شما را زیبا کردم شما باطن را زیبا کنید شما درونتون را زیبا کنید فا احسنو سرائرکم لا تمسخو بالعذاب زواهرکم ای انسان ها شما بیاید و باطنتون را زیبا کنید باطن را با چی زیبا می کنیم با ایمان با تقوا با خدا ترسی خوف خدا تا اینکه این ظاهر زیبا با عذاب خراب نشه چونکه انسان وقتی که درونش خراب بشه شرک و کفر باشه می سوزد و این ظاهر زیبا تبدیل به یک جزغاله و خاکستری میشه بدترین شکل را می گیرد لزا الله می فأحسن فاحسنس وإليه المصير، المصیر فغت وفغت باز گشب سوی او معاد ببینید دو چیز کہ برائے معبود حقیقی لازم اسی کہ قدرت کامل تو انجا قدرت کامل اشراخان دیم از این بعد علم کامل اشرا میخوانیم يعلم ما في السماوات والارض اللهم میدانت آنچه که در آسمان ها اسوان چه در زمین است وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ الله ميداند آنچه که شما مخفی میکنید وآنچه که شما علنی میکنی ظاهر میکنید والله علیم بذات الصدور الله عز وجل علیم داناس براز سینه حتى در سینه شما اگر رازی باشد اگر وسوسی باشد اگر خیالی باشد باشد هم خدا ميداند بعد از این که خدای تعالی توحیدش را بیان فرمود حال الله عزوجل تخویف دنیوی بیان می فرماید ببینید مخاطبین قرآن کسانی که در گذشته بودند توحید را انکار کردند ببینید عاقبت و انجامشون ایشون چی شد شما نکنید شما راه اونها را نبرید الم یاتیکوم نبؤ الذین کفروا من قبل آیا نیامد پیش شما اخبار اونهایی که کف کردن قبل از این فذاقو وبال امرهم اخبار فرعون اخبار قوم اخبار قوم سمود فذاقو وبال امرهم انها چشیدند وبال امرشان را یعنی کیفر اعمالشان را این در دنیا خدا عذاب آورد برای بعضی سنگباران آمد برای بعضی سیل آمد برای بعضی مسخ از کنم تبدیل شدن به حیوان آمد برای هر یکی یک چیز آمد و در آخرت این در دنیا بود و در آخرت ولهم عذاب علیم برای آنها عذاب دردناک است این عذاب و این بخت بختی برای چی بود ذلك بأنه کانت تاتيهم رسلهم بالبينات یعنی اونها بر پیامبران همون اعتراضی گرفتند که شما قریش مکه همون اعتراض را دارید ذلک این بسبب این بود که بانه همانا, پیش بأن همانا شان این است کانت تاتیهیم پیش آنها می آمد رسولهم بالبینات رسولشان پیانبرانشان همرا با معجزات آمدند همرا با دلائل آمدند بینات هر دومان دارد اما اونها چی گفتند؟ چه اعتراض کردند ابشر يهدوننا انها گفتند آیا بشر آمد مارا را راهنمایی کند چرا ملک نمیاد فکفرو کفر کردند به خاطر اینکه انکار کردند بشریت پیامبران را و وتولوا و پشت دادند واستغنى الله خدا از اونها خدا گفت من نیازی به ایمان شما ندارم والله غنی حمید وقتی که کفت کردند خدا هم از اونها بینیاز هست وستود شده هست این اینقدر خلاق دارد که یک وجب جای نیست از بس این خلاق به تسبیح و تقدیس خدا مشغولند زعم لفینا از اینجا بعد انکار معاده اون چی که تا اینجا خاندید انکار مبد بود انکار خداوند بود انکار توحید اما نه تنها این ها منکر توحید بودن منکر معاد هم شدند قیامت زعمل لذین کفرو اللن یبعثو پنداشتند یعنی عقیده داشتند نظر داشتند فکر این پندار این پندار را داشتند این تصور را داشتند کسانی که کفر کردند لن یبعثو هرگز از قبرها بلند کرده نمیشوند. اونا عقیده این بود که هرگز از قبرها بلند شدنی نیست الله جواب میده قل بلا و ربی به آنان بگو بله چرا نیست و یعنی قسم برب من سوگند به ذات پروردگان من لتوبعثن حتما حتما شما از قبرها بلند کرده می شوید ثم لتونبعن بما عملتم سپس شما خبر داده می شوید آنچه که شما عمل کردید خدا به شما میگه ای انسان در دنیا چی عمل کردی؟ در دنیا چی خیانت هایی کردی؟ خیانت چشم، گوش، زبان، دست، پا، شرمگاه همه را خدا میگید و ذالک الله یسیر این بر خدا آسان است سی آسان است؟ ذالک بینیسی به اصد یعنی بلند شدن، بلند کردن مخلوقات بر خداوند آسان است چرا به دلیل کمال قدرت شما الان خاندید چه قدرتی خدا داره قدرت داره لذا آسانه که دوباره این انسانها را زنده بکنه پس ببین دو چیز ثابت شد هم توحید ثابت شد مبدع از خدا هست و هم معاد ثابت شد قیامت ثابت شد وقتی که اینها با دلایل ثابت شدن خداوند دعوت میده سوی ایمان اما ببینید به چه ایمانی فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پس ایمان بیاورید به خدا ایمان بیاورید دوم به رسولش ایمان بیاورید سوم والنور الذي انزلنا و ایمان بیاورید به نوری که ما نازل کردیم مراد از نور چی قرانه قرآن را خدا نازل کرده قد جاءكم من الله نور و کتاب الله قرآن را نور میگوید، ای مسلمان این قرآن واقعا نوره. اگر این قرآن در قلبت باشه قلبت پر نوره، قبرت پر نوره، حشرت پر نوره، دنیایت هم نوره، آخرتی هم نوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعایی کرد گفت خدا یا اطراف من نور قرار بده. جلوی من نور باشه پشت سری من نور باشه راستم نور چپم نور در قلبم نور خود من را نور قرار بده در چه صورتی شما نور میشید و در چه صورتی همه زندگی شما پر نور میشه که قرآن در زندگی شما باشد الفاظ قرآن را شب و روز تلاوت کنید به معانی قرآن شب و روز فکر کنید عمل کنید تجارتتون بر اساس قرآن باشه این نیست که دست بکشید فقط جلوی قرآن بینشینی نا تجارتیتون هم طبق قرآن باشے عروسیتون طبق قرآن باشه. عبادتیتون طبق قرآن باشه اعتقاد و باوریتون طبق قرآن باشه مردم قرآن را میگه ما قبول داریم قربان خود، کتاب خدا بریم ولی ایمانشون اقایدشون مثل قرآن نیست بیایید ببینی قرآن چی گفته؟ لذا الله می فرمات پس ایمان بیاورید والنور الذي انزلنا به ان که ما نازل کردیم والله بما تعملون خبیر اللہ به اونچے کہ شما عمل میکنی خبر داره پس وقتی که شما حتما از قبرها بلند میشید لتبعثن ثم لتنبؤن پس بیاید ایمان بیاورید به خدا رسولش به این نور اما انکه خداوند فرمود لتوبعسن ثم اونا این انکی هست يوم یجمعکم لیوم جمع. خداوند میفرماید این روز اون روزی هست که شما را خدا جمع میکنه برای روز جمع در برای روز قیامت اینجا دو نام آمده یکی یوم جمع، یکی یوم التقابل به همین خاطر این سوره را میگند سوره تقابل تغابن نامی از نامهای قیامت است معنیش چیه اولا خداوند می فرمان ذالک یوم الجمع یوم یجمعکم لیوم الجمع روز قیامت را چرا روز جمع می چون همه را خدا جمع می کند اولین و آخرین را جن و انس را سیاه و سفید را عرب و اجمع را مسلمان و غیر مسلمان را هرچی انواع بشریت است و انواع مکل مکلفین است چه جنات چه انسان ها همه را جمع میکنند به این خاطر اسم اون روز هست یوم الجمع چقدر هستند شما تصورش را بکنید امروز مردم یک شهر جمع میشه انسان نفسش میخواد بره بیرون از بس هول میکنه یک شهر اگر مردم دنیا که امروز هشت میلیارد بیشتر هستند جمع بشند چی خبر میشه باز اولین و آخرین از آدم گرفته تا آخرین انسان همه جمع بشند اینا چقدر هستند سبحان الله همه را خدا جمع میکنند به این خاطر اسم اون روز روز جمع هست اون روز انسان سرگردانه همه پریشانند اولیاء الله پریشانند صالحین پریشانند مؤمنین پریشانند غیر مؤمن همه پریشانند حتی انبیاء همه پریشان هستند تا این که رسول الله شفاعت می کنه خدا یا حساب و کتاب آغاز بشه لذا الله می فرماید یوم یجمعوکم لیوم الجمع روزی که الله شما را جمع می کند برای روز جمع ذالک یوم تغابون اون روز روز تغابون از تغابون یعنی برد باخت. یعنی چی؟ برد باخت. بعضی ها در اون روز برد میکنند، بعضی ها می بازند باختشون هست اونایی که ایمان داشتند عمل صالح داشتند اونایی که زندگی قرآنی داشتند اونایی که صدقه دادند، اونایی که خدا را راضی کردند برد مالیون هست و اونایی که غیرین بوده باخت من اون هست. ذلك که متقابون این روز روز تغبون هست روز برد باخت هست اصل قبل میگویم را نه؟ شما تو کتاب خندی قبل فاش فریبر اون روز روز تغابن هست یعنی بعضی فریب خوردن بعضی فریب نخوردند بهترین تعبیر همون برد و باخت است در از کنم که از همه تعبیرات وقتی در ترجمه ها نگاه میکنیم در زبان اردو آورده جیت هار جیت یعنی مبرد هار یعنی باخت لذا کسانی که اهل بردن کیا هستند بعد از این مشخص می فرمایید و من یؤمن بالله و يعمل صالحا بشارهت اهل برد هر کسی که ایمان بیاورد به خدا و عمل صالحا عمل صالح انجام بده یکفر عنه سیئات الله جل سیئات را یعنی جزای سیئات را کفر می فرماید دور می گرداند یعنی هرچی بدی کرده خدا همه را پاک میکند و يدخله جنات تجري من تحتها الانهار و اورا داخل میگردند در اون جناتی که جاری است زیر درختهایش نهرها خالدین فیها ابدا اینها همیشه در آن جنات به صورت ابد میمانند ذالک الفوز العظیم، این فزیلت جنت است، این کامیابی بزرگ ان این موفقیت و رستگاری بسیار بزرگی هست، این اهل بوردن، اما کسانی که میبازند، والذین كفروا وكذبوا بآياتنا. انها که کوف کردند و تکذیب کردند نسبت به آیات ما آیات را تکذیب کردند یک تکذیب قولی هست یکی عملی که انسان هیچ عمل نکند اولئیک اصحاب النار این افراد این گروه اهل جهنم و اهل آتشند خالدین نفیها همیشه در ان آتش می مانند. و بئس المصیر جای رجوع بسیار بدی هست ان آتش ما اصابه مصیبت الا باذن الله من يؤمن بالله يهدي قلبا بس بحث, بحث انفاق بود و بحث جهاد بود انفاق جلوتر میاد لذا الله می فرماید که هر مصیبتی بیاد به خاطر جهاد نمیاد به خاطرش امر خدا نمیاد هر چی میاد خدا قبلا نوشته باذن الله میاد ما صاحب هیچ مصیبتی نمی رسد به شما ما عصابا من مصیبتن نمی رسد هیچ مصیبتی الا باذن الله و من یؤمن بالله یهدی قلبه اما کسی که مؤمن باشد به خدا ایمان بیاورد خدا قلبش را راهنمایی کند قلبش را راهنمایی کند یعنی چه یعنی به وقت مصیبت خدا او را میفهماند که این مصیبت از طرف خدا آمده اون زیاد جوش نمی زند تفسیر الجلالين چی میگه يهدي قلبه في قوله ان المصيبه يصيب لقضائه يعني یعنی قلبش ربی این سخن راهنمایی کند که مصیبت آمده به خاطر رضای خدا آمده خدا راضیه پس در مقابل مصیبت چی میشه تسلیم میشه ما آلوسی می آل فرماید يهدي قلبه عند اصابتها لصبر یعنی خدا راهنماییش میکنه وقتی که مصیبت به او برسد صبر میکنه و الاسترجاع ان لله و انا الیه میگوید و این خدا فهم را بهش میده که این از طرف خدا آمده من باید صبر کنم راضی بشم لز یهد قلبه به معنی است والله بكل شئ علیم خدا به هر چیز علیم و آگاه است و اطیع الله و اطیع الرسول وقتی که مصیبت میاد در مصیبت ها هم شما نفس را راضی نکنید خدا و رسول را راضی کنید و اطیع الله و اطیع الرسول فانت وليتم اگر پشت دادید اعراض کردید خدا را اطاعت نکردید رسول را اطاعت نکردید بس zarar بخودتون خودتون على علی رسولنا البلاغ المبین جزء نیست که بر رسول ما چی هست رساندن آشکار بلاغ مبین هست. الله لا إله إلاهو این بیان تویید هست. دلایل قبلا گذاشت. بعد از دلایل ثابت میشه که الله ذاتی است که دیگه معبود بجز اون نیست. از کردم تو این سوره بسیقیامت تو تویید هست. و الله فلي المؤمنون فقط و فقط بر الله باید توکل بکنند. اهل ایمان. ببینید. در این سوره ها وقتی که بحث بحث جهاد هست موانع جهاد را هم خدا ذکر می فرماید این ما اصابه من مصیبت دفع مانع اول بود انصاف فکر می اگر جهاد برم شاید تیر بخورم شاید کشته بشم شاید زخمی بشم شاید فلج بشم شاید برای همیشه از کار بیفتم خدای تعالی فرمود ما اصابه من مصیبت این اللہ الله مصیبت که بیاد میاد بدون جهاد همیت خیلی اتصادف می کنند فلج می شند. خیلی اتصادف می کنند می میرند خیلی همین طور معلوم نیست که علتی تو بودن شمات فلج شد لذا این نباید بها با نی باشه برای ممانعت از جهاد دوم مانع بزرگ جهاد چی هستند اولاد انسان همسران یا همسر انسان زن و بچه اینها مانع هستند میگه اگه برم تکلیف اینها چی میشه اینها از کجا بخورند اینها را بعد از من اگر از بین برم اینها را کی سرپرستی کند، لذا این فکرها همیشه مانع بزرگی برای چی حس برای جهاد است، خدا این مانع را رفع میکنه جواب میده یا ایها الذين آمنو، ای مؤمنان ان من ازواجکم و اولادکم همانا بعضی از هم و اولاد شما عدوف ولکم دشمن شماستن البته دشمن انهایی که ما را وادار می کنند که دنبال خلاف بریم دنبال کسب حرام بریم تفسیر روح المانیم نوشته و قد یحملون هم على سعی فی اکتصاب الحرام گاهی زن و بچه انسان را وادار می کند که دنبال کسب حرام بره و ارتکاب الاثام دنبال گناه و مرتکب گناه بشه لمنفعات انفسی ہیں بخاطر منفعات اونا گاهی زن بچه تغازہ های آنچنانی دارند تغازہ های دارند میلیونی دارند که شوهر بیچار مجبور دنبال خلاف بره لذا اینجا می که این من ازواجکم بعضی از همسران و اولاد شما عدوب ولکم دشمنش رو هستن از اینو زن و بچه برحضر باشید یعنی زیاد از اینها حرف شنوی داشته نه باشید هر خلافی کنها میگن نکنید خب انسان وقتی که زن و بچه اینچینینی داشته باشه چطور تنبیه بکنه کتک بزنه بازم نه خدا میفرما و این تعفو و تصفحو و تغفرو اگر معاف کنید در گزار باشید از ته دل ببخشید اونها را فقط راه نماییشون بکنید نزنید فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ هم انا خدامندم هم بخشنده و مهربانم تحمل بکنی بعضی از حرفایشون را إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ جزی نیست که اموال شما و اولاد شما چی هستن فتنه هستن برای شما امتحانم فتنه اند فتنه به من امتحان هم میاد و فتنه به فتنه همی اما به معنی امتحان است امتحان نمی گذارم برای جهاد امتحان را نمی برای راه خدا اما وقتی که خدا را راضی کردی در مقابل اونها والله عنده اجر عظیم خداوند پیش خداوند در محضر خداوند اجر عظیم هست فتقوا الله ما استطعتم خداوند می فرماید تا جای که می توانید از خداوند بترسید قبلا درباره تفسیر این آیه در اون آیه اتقوا الله حق تقاته عرض کردم که اون درباره عقاید است این درباره اعمال است تا که توان دارید تا که قدرت دارید از خدا بترسید یعنی عمل کنید هر چی که در توانتون است واسمعوا گوش کنید حرف خدا را و اطیعوا اطاعت کنید و انفقوا مال دارید خرج کنید خیرا لنفسکم اینا بهتر هستند برای خود شما اما هر کسی نمی تونه خرج بکنه کسی خرج میکنه که در وجودش حرص و بخل نباشد درباره صحابه دیروز خاندیم کنها از حرص و بخل پاکستان و یو قشح نفسه هر کسی حفاظت بشه از حرص نفس از بخل نفس فالائک هم المفلحون انها چیان رستگاران هستند. لذا اگر در وجود شما حرص نباشه بخل نباشه شما رستگار میشید. و باز الله عزوجل در آخر آخرین آیه الله تعالی تشویق میکند به انفاق اما با تعبیر جدید تعبیر دیگر خداوند میفرمد این تقرد الله قردن حسنا اگر شما به خدا قرض بدید، قرز الحسن بدید یعنی اینطور بدید که فردا از خدا پس بگیرید به نیت بدید به بی این شرط بدید خدایا این بیت میدم در راهت میدم برای رضایت میدم از تو میخوام و این را هم خدمت شما بگم که اگر انسان به خدا بده و از خدای اززا در همین دنیا عوازش را بخواد چند برابر بخواد اینجا خدا فقط بحث آخرت را ذکر نکرده یضاعف هلکم هم در دنیا هم در آخرت است اگر در همین دنیا انسان چند برابر بخواد هم خدا میده و در اون دنیا هم باز بیش میده یعنی نیست که فقط بگیم در آخرت خدا میده نه بنده همیشه در باب آیات انفاق حکایتی میکنم که یک عزیزی بود قبلا اینجا چند سال پیش الان نیست یه شهری دیگه رفته اینجا تاجر برنج بود اون زمان حوزه خیلی مشکلات داشت برای بعضی از حزینه ها حوزه مونده بود مولانا اینجا در مسجد اعلام کرد و اون بند خدا اون زمان آورده بود پنج میلیون تومن آورده بود میلیون خیلی پول زیادی بود بعد به من گفت ایک گفت من این پنج میلیون دادم به خود مولانا بردم تحویل دادم ولی دعا کردم گفتم خدایا من پنج میلیون در راه تو دادم پ میلیون وش رو میخوام میگه که ده برابر از خدا خواستم قسم یاد کرد که در همون یک معامله گفت من از لاهور پاکستان برنج گرفتم آوردم اینجا پ میلیون سود کردم در یک معامله یعنی اگر انسان از خدا در همین دنیا چند برابر بخواد هم خدا بهش میده. ان الله می فرماید ان الله قرضا حسنا اگر شما به خداوند قرض بدید قرض حسنه یضاعفه لکم چند برابر میکند خدا برای شما در همین دنیا و در آخرت و یغفر لكم در اخرت شما را میبخشد والله الشکور حلیم سبحان الله خدا شکر است شکر یعنی چه یعنی قدردان بنده که در راه خدا انفاق میکند بندهی که در رای خدا میدهد خدا قدردانی می کند و هست خدا چیه بردباره خدای عزو جل حلیم و بردباره هست الله عزو جل حلمش هم زیاده است عالم الغیب و شهاده این علت است چرا چون که خداوند ذاتی هست که هم غیب را میداند مغیبات و مخفیات و بواتن را و هم شهادت حاضر را می اون چیزی که عیانست میدوند، و ذاتی هست که العزیز غالب هست، و الحکیم کارهای الله عز و همرا با حکمت هست، صدق الله مولان العظیم.